برسول اللہ الرحمن الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ علیہ و رسول و طاهرین و و و مفهوم و توضیح کلمات اعظام متعرض این تاریخ مسئله را برخوردی که با این مسئله بیش آمده و زمینه این مسئله رو متعرض شد و روشن شد که به حیقت آیال اهل اساس این مسئله را از به اصطلاف روانیات به شروع کردن دیروز خوندیم و معلوم شد که این بحث بحث قدیمی و از اصول و از فیر انتظار شده بحث خوبی هم هسته مشکل خواستی هم نداره البته <تصفح> آخرش کاریم باید که اون مشکل روش من معاذی هاش استقیقی هاش موردیه اونم باید در نظر گرفت این صافم باید داشت. داشته به چون این فیصاه مثلا همه سکاتون به عنوان مفهوم وست در اینجا دیروز ذکر شد اولا خودشون تقیید بزنه فی البرین شاتن شاتون رو مفهوم رو برس من این نکته ایچ کن رونا نکته هست آقا را متعرض شدیم بعد نیست از از ازکاری بزنیم نکته هست در حتی نکته ها نه اینها کنم تبنی باشه نکته ایست احتمالی ما داریم که به قرار همه سایمت زکارتان اصولا مفهوم نداشته باشه به خلاف این تصوراتی که یک مفهوم یا دو تا یا سه تا, چار تا مدلو یا چهار تا 4 تا مفهوم کردن یکیش منطوب هیچ منطوق مفهوم یا دوتاش تاش مفهوم یا یکیش مفهوم اعلی خلاق اروا ما این احتمال در کلمات اصول ما هم آمده خواهی نخواهیم شیعه سنی و امونه پس بعد از 2 و در قناعه بردیم هم این و عنوان مفهوم ور حالا چون بحث ما محفوظ نیست این بحث ها سابر اشاره و هدف اساسی بنده این است که ما خواهد این نفتر در ذهن هست که این نفتر روشن کنیم که ممکن است یک عبارتی که حالا خیلی ازش مطالب فهمیده شده و بحث شده اصلا با یه دیدگاه جدیدی مطرح باشه ما اونجا از فکر احتمالا که سایمت غنه این بیان برای خدا آیه باشه خود رو هم وادهیم این تفسیر ما باشه نه یک خدا داشته باشه دنبال اون بحث باشه چون از کردیم که متعارف در مردم این بوده که گوزفند رو نگه می دو ماه ما مهمانی مهمان خودشون می کشن این که رو یک سال نگه بذارن داخل در هزینه زندگی نکنن درق بکنیم ولو روایی از ناظره به سالمه لیکن چون روازیگم داریم که لازر کاسفی هفته یک بوده دوتایی رو که با هم جنب بکنیم یعنی این آیی رو با که هم پینا اینجور فرم اگر شما گوستان دیداشتیم که این گوستان در صحرا بود در شراب بود و یک سال هم کشه شما بود و خورده هم و هرکول بود نشد. مرد استفاده قرار مگر از جزء حذف نشوند این جزء مال زی، مال الان ماله. مثلا اگر شما با خودتون بینه علف دادیم، این در عقب نو تبدیل ماله. این مالوف بودن، پسوند شما می‌ندازد می‌خواین علف بیماری که داره، این علف رو به هیوان، تقریباً تبدیل به شیر و به گوش و نرم میشه. پس این در عقب اینو تبدیل ماله. اما شما اگر یک حیوان داریم یک سال گوزفن داشتیم مثلا گوزفن که زودت هم خورده میشه گوزفن داشتیم یک سال را سحرا گردم بود ایچ خردم برش نگردیم یک سال هم گذرش دیگه در نگرد این جزبه مال خورده هم ماله هم سا دارت هم به نظر احتمالا مثل این حدیثه مثلا نازل به مفهوم نباشه که دنبال بحث به مفهوم بگردیم که مفهومش یکیز یا دو ساست یا که هست هست دو مقاله باعثه بعضا ما یه مفهوم شیءیی است که در فقه سند معروفه زکات نیست بلکه مفهومش دو تا سند معروفه زکات نیست بلکه گفتن سه تا در سند معروفه نیست در صور معروفه و معروف هم نیست سه تا مفهوم داره این یکی چیزه که سه تا اشاره کنم اصل که در صادر ما از کردیم که احتمال داره کسی به دست او میشه و با فهم ارشیش به این متن نگاه بشه اصلا بحث مفروض توش مطرح نباشه دنبال مفروض نیست این در حقیقت تفسیر آیه مبارکه از خود می اموال همین صراحت تو فخرهم بها تو کن یعنی اگه خونه انسان بشه علف داره این دیگه مال نیست این تبدیل ماله من میگم علف را چه یا مثلا یون جه خریدن یا که خریدن یا جه خریدن فردیش کردن پیوان این دیگه عنوانه مالی که از صداره گرفته بشه نیست اون وقتی مالی یعنی یک سال پیش شما بوده مصرف هم نکردیم. کاری ازش نگرفتیم، از این کردن درو کردن کاری ازش نگرفی و در این مدت هم علف صحرا شریده در علف سهران در چرا خب طبیعتاً چیز حیوان مال حساب میشه. خود اون حیوان صدقه این بیگه واقعاً ماله. حالا اونم مال برای چه کاری می‌کنه؟ چون نشده در برای انجمنی زندگی آورد. اگر این باشه این بحثایی که اصولی این که در مورد مفهوم و احسان، مفهوم قضیه اونوره. خالی نهایی منتفی میشه. این آیه ناظره به شرح موضع حاکم تفسیر می‌کنه کلمه مال رو که در قرآن کریم آمده به اولاً بیان کرد این سنتی نیست ال رسول الله اینکه جعل کرده باشند که مثلا پیر ثروان دارانا زکاتی فی معرفه لی زکات کنیم نه این همون تفسیر آیه است خذ من اموالهم صلات و بعیداً نیست اساس تفسیر عرفی باشه تعبدی هم نباشه این در نظر عرف اون او که عادتن دو سه ماه یک بار دو محسمان میمان ما پیش میاد خود انسان میخور این یک سال نگرش داشته خلی هم برای نگذاشتی در صحبا چهیده این دیگه واقعا در مال شدیده خانوانه مال برستره میکنه قررت اینم راجب یک ای راجب این مثالشون به ذهن مطلی در سرید کردم که مطلحش بکن در مطلبی رو که ما از احل سنت نماز کردیم ریشه های بحث بود که به نظر من اشانده کارکی بود. یکی دوتا مسئله دیگه هم هست بیشتر جنبه نکاسی داره جنبه نکته داره و بعد نیست اطلاع بر این نکته ها و مخصوصا برد مخصوصا که یاد بردی ها جا شده بین ما و اونها اولا احرش آنه در اینجا برداشون مثل همین کتاب نسبت همون فصل وقتی از راجب تخصیص عموم به محروم برداشون مختلفت هم مثل احکام آمدی برداشون مختلفت هم اون نقطه اساسی که در وقت اونها مطرح شده اینه که اگر مفهوم دلیل خب دایدم عموم تخصیص میده چه برمون کنم؟ دلیل منجو دو دلیل مفهوم دفتیم این اونی که بیشتر تو کلمات اونها مفهوم دلیل هست. اگر دلیل شد دلیل امور تخصیص میسن نوست دیگه محطوق دیگه نوست که هر خواست دیگه پس نقطه اصالتی قبول مفهوم این شبیه پس این آیه نماز مثل همون نایه که اینا همونی وقتی ثابت شد مفهوم خب فرسته سیست بلا بعد بله حاصل دیگهونه نه اینکه هست اما اینکه نیستن که پیوژه بحثه ما نمیخوایم تا اینجا یعنی هم دلیل نباشه خب اون بحث دیگری یا مفهوم اصلا قائل نیستین اگر قائل مفهوم شدیم خب مفهوم دلیل باشه لذا یه بحث اینه ما در بحث خارجیش عرض کردیم یه بحث اینه یه بحث اینه که درست مفهوم دلیل خوده. اون دلیل بحث ما اینه آیا چون مفهومه این منش میشه که عقبا بشه از متنو یا از اثر بشه از منطوب. اگر عقبا شد اضافه بعد تخصیص یعنی برای از مواد شوهر تخصیص میزن قریظت میشه اگر اثر شد ممکنه دلیل باشه اما دلیل نیست که چون عموم تخصیص بده در واقع روح بحث در در اینجا اگر بخوایم بحث فنی انجام بدیم روح وقتی از که مفهوم بودن به ما مفهوم چه تحصیلی در این نقطه داره؟ سوال چون از هر به مفهوم بودن از دو ده ها مورد وقتی علمای ما و علمای سنی از همون چاردهی چارده هم وابد شده به همون ارتکاز داده شده این مفهوم بودن چون دلالت تبعیض پس زریف میشه پسید نشون روزن و چون محکوم کرده ما تأکیده بیشتری شده به خاطر اینکه مفهوم یعنی هم منطوق هست هم او اضافه شده این منشه قبوتش میشه و رضا هم عمومی تخصیص میداره هم ممکنه برزه از مواد شوقت تخصیص داره این و تخصیص داره این تمام نقطه بعد پس تمام نقطه بعد فقط این کلمه نیست که چون دلیلن تخصیصی دنه درست یک ایک نقطه برست لیکن اون درافت بیشتر برست نیست که این نهره دنی چی جو که من از سر در گفتن حدیث معلل برقی به حدیث معلل مقدم میشه چرا چون معلل دو مرتبه بکن داره دو مرتبه بکن داره این مقدم میشه اینجا همه همین تصوره آمده مفهوم که از دو مرتبه آمده چون ای بارم یعنی هم تو و هم مفهوم هر دو بر وارد میشن ازا قوت بیشتری پیدا میکنه مثل معلل برقیه معلل مقدم باشه یا نه چون دلالتش به مفهومه به لفظ نیست ازعف میشه اگر از اف شد درست تخصیص میزنه اما در مواد مشکل دست نگرم یک کار نیشون یا اصلا مکنه اصلا تخصیص نشید بگید دلیل هست میکن در حدی نیست تخصیص میزنه. پنه اصلا سالان کرارن بودن نرارن یک بار. این رو ما داریم در علمای ما داریم البته وقت الان ما نداریم چهاران بوده مثلا اینا باید در یک دلیل ممکن است داره دو مرتبه باشه یک مرتبه. دو مرتبه یک مرتبه مثلا حجت باشه در یک مرتبه حجت نباشه این الان ما نداریم اصطلاح ما الان در زمان ما یعنی اصولینی که من بیشنستم اون این که من این معروب خوبی من مستازی این معنا رو ندارد اما این داری در مثلا معروب علامه که خبر حسن تقصیل کرده خبری که راویش امامی ممدوه هست اما توصیق نشود ایشون راجع هجه به خبر حسن و فتوای علامه نظر که علامه اگر خبر حسن تنها بود معارض نداشت این حجت اگر خبر حسن معارض نداشت حجیت اما اگر معارض داشت ندید یه حجیت نداشت حجیتش با عدم معارض اما صحیح حجیت چه معارض باشه چه نباشه؟ اطلاعا ما کسی از علمای ما اینجوری نداریم که اینجوری قاهی بشه. یه چیزی گاهی حجیت هست گاهی حجیت نیست الان نداریم اما این در پندیش های از علمای بوده و مهاد بگن مفهوم دلیل هست اما اینقدر دلیل نیست که زور داشته باشه آم رو پس در حقیقت نقصی اصافه بعد یه آیا مفهوم به نفس صلاحیت تخصیص دلیلیتش تامه و ثانیه یعنی این که اهم نقصش اینه به خاطر مفهوم بود اینه نقصه بعد همینه نه یک و دو مفهوم و اگر من دلیل قبول کردی به خاطر مفهوم بودن اقوا میشه از دلیل آزی یا به خاطر مفهوم بودن از اقوام میشه این نکته چرا اقوام میشه چون در منطق هم آمده و این به مفهومه مثلا اگر گفت لاسو کنه فسا فسا و, فسار. فسار و اکرام و زید هم فاسده یعنی اکمل علمان با موسیقی شد اکمل علمان زید از علمان بخواه اینجا اک زیدون فا اکمل و مفهومی شده که اگر زید نیامد و اینکه از علمان اکرام میشن این مفهوم اگر زید نیامد از اون اکمل علمان اقواست به این مدعایی نگه یعنی اگر زید نیامد باید که آدمه اکرام ند چه چون این حکم دو بار آمده یکی فرض مجیع یکی فرض عذر مجیع فرض مجیع که منطوبه افضل اما این مقدار نشون میده که آم خیلی تاثیر تمام نداره اگه تاثیر تمام داشت نمید مجیع در زیر تأثیر بذاره چه؟ این مقدار میاد آم رو تکانش میده متزرزه دشون اگر بنابوز آم باشه اوزید رو باید مطلقا اتران میتردی میخواست بیاد میخواست نیادشون این مثال یعنی من خواهیم تقریف بکنم در این مثال به خاطر مفهوم بودن یک قوتی گرفت. یعنی قوتی گرفت به لحاظ دلاز دلالت نسبت به آم معلوم شد آم به عمومش مراد می ازا این گیر یار آم این آم توی زیده عالم گیر داره چرا؟ چون گفت اگر آمد اکرامشون اونجا گفت اکم این علماء اگر توشن روشیه اونجا که اگر نداشت این اگر که آمدی که من اوستا تعارض با من تو بود داره همون داشته این بشه تعارض داره اینکه باهم این یعنی بیاد دیگه اون حالت مثلا عموم دیگه مطرح نیست در خطورت زید اون حالت عموم دیگه مطرح نیست روشن شد خب وقتی در منطوب آمد که روشن شد که نیز مفهوم دیگه خایناقه مقدم میشه چون اون حیبت عموم رو شکون اون اکمال علمای حیبتی داره حیبتی چیه این شکون برای چون زیر یه خصویه دیاره که مجید دیگه لبزه اینجا منطوبه معلوم میشه مجید تاثیر داره حالا که مجید تاثیر داره پس اگر نیامدن با اینجا آلمه دی اون سهولت عامش کرد. دقیقاً این نکته این که اما اگر میگفت لاثو سیدال عالم به این قوّت نموت، دقیقاً خیلی عادی بود. گویا ائمه علما لاثو سیدال خیلی مشکل داشت. یک آم بود یک به بهش شد. اما اینجا که ما اول حیبت آم وش کرد. بعد این کذب با اینکه عالمه خارجی نمیاد تعامل بون. این نکته کسانی است که میان مفهوم قوّت مفهوم بوده هم فرمانوگین با با حدیث نه مفهوم قوت میده یعنی مفهوم کاری میکنه که بر آم نیتونه مقدم باشه راحتی بر آم مقدم باشه به نه به قوت نه مفهوم هست یا نه اگر مفهوم نداره یه چی برسه آ، اون بحثی دیگه‌ست اون بحثی هست که اگر مفهوم ثابت شود به نحوی که خاص خودش اگر مفهوم ثابت شود این نکته اینا میگن مفهوم دلیل است فیقد در الان این طرح کلیه بحثه ما هم میگیم ظرافت این, این بحث این نیست که دلیل وقدم الان ظرافت این بحث اینجاست که این مفهوم اول که دلیل باشه ثابت باشه و دلیل باشه لکن این نحره دلیل چون محکومه ضعیفه دلالتش ضعیفه لذا مقابل آم نمیتونه بگیسته از این تصورا چون محکومه دلالتش خویه این مقابل آم میتونه بگیسته بلکه بالاتر از او حتی میتونه در موارد همون خسومه بلکه هم بگیسته این, این نقطهش اینه یعنی نقطه تو این مثال نیست الان من برای مثال بزنم میگه چون این نقطش با مفهوم حتی جای دیگه اگر در لحظی بود با آم نمیست دار. اما مفهوم میست این ظرافت بحث اینه ظرافت بحث, بحث. اگر لحوم اصفات میشه که هم بکر با میگنمی شده نه اولا یک ممکن است مفهوم اصفات بشه چون دلالتش از عبا آمو نمیشه بزنی کنم این یک فهم نکات اصلی کردم اما یه صحبت دیگه اینه که چون متن الا تغییر ثبوتش خوب دقت بکنید چون متن روی منطوق هم اعتماد داره خوب ظرافت نکته رو بگم که کجا محله قرار داره این اینقدر قضیه کنه که حتی بعضی موارد مشکوک خوب دقت کنید چه اگر مرفوز بود مقدم نمیشه اما الان که مفعول مقدم میشه مثال اگر گفت اکرم خدام الولما این مثال جمعه میزن و گفت لا شکل مر فصا این تو مثال دقیق کنی اکرم خدام الولما بگیم به اولویت وقتی خادم اکرامش باشیم باشیم خود اولما رو سرگیم اولا خب مهند کلام پریادی اکرام الولما به اولویه خیلی خیلی حالا در عالم فاسق چیکار کار کنیم اون لا شکل مر فصا اونگه اکرامش نکنیم این محکومی می... اون نکته بعد اینجاست اونایی که میگن مفهوم قویتر میشه میگه چون قویتر تر شده حتی در اینجا هم بر آم مقدم میشه <تصفيق> یعنی اگر لفظی بود گیر میگردیم حالا لفظ چون نیست محکومه این محل کلام شده باشه همین آره. این اون مفهوم پیدا بحث دیگه یعنی طرف که مفهوم بود اجازه بدید مفهوم بود حالا دقیقاً نهی مفهوم تصور کردیم یا بگیم به کلی ناینه از اون راهی که ایشون مفهوم بعض مطلق اصلو مفهوم محض هواری ما که نداره که اصلا این با این میتاد رو این مثال من روشن شد بحثه اگر از گفتیم مفهوم حتی از منطوخ هم قبی کرد چرا؟ چون آمده یک قرینه ارتکازی اقدام میتونی ویده اکتم خدا من علمان بگیم خیلی اهمیت برای عالم قائله این اینقدر داره اهمیت برای عالم قائله که حتی میگه خازمش رو میکرام بکن نوکرش رو میکرام بکن یا با گفت که یما در خونه اون عادی گفت ما به اگر مرحوم هاشم جعفر صورت رو اگر نباشه خونه در خونه ایشون تعریض میکنیم بچه‌ام ولی سر حالا فرض کنم بچه بچه‌ش کنم خب این دفرخونه. من بچه آدم تعریض میکنه خادم عالم هم دقت این دهکمه نوری رو روشن شد و حلوا این نیست که خدا اون اون سنی نکته بعد از ثابت شد طبیعتا مثل منطوخه به اندازه منطوخ تخصیص میزنه این یکی نه زعیفتر از منطوخه مثل قضیه لفظیه نیست زعیفتر از اونه تخصیص اونطور میزنه دو سه قویلتر از اونه حتی جایی که منطوخه تخصیص میزنه محقوم تخصیص میزنه مستنیمتا گفت اکرم خدا منوانما از اونان گفت لا تو رسال روشن شد خب معنیش اینه که هر به علما اشکال عالم فاسق به مفهوم برگردید یا به ثمره دیگه تک الوشه این لفظ بود میگفتن تعارض بود چون مخصوصاً نشد که اکثر علما لو ذکر منفسق این تعارضی این مدعی میخواد بگه چون مفهومه خب دقت چون مفهومه این قاعده این دلالت قوی میشه حتی اینجا هم آن مفهوم مقدم است که که خیلی اون امکان رو دیگه خیلی واسه نظر تحت استظهار ببینید شما ما یه دفعه استظهار میکنیم این معنا رو یه دفعه استظهار میکنین ضد که قوت ندار این فرص خوبش میگه که اکمل این فرص خوبش هم میگه با الله شکریم یه دفعه میگیم نه به اصطلاح یا این ثابت سابه یا اون وره سابه یا میگه مجمنه کلا مجمنه خود خسته نکنید. به اصطره استزهای تا به حد من عرض کردن این بعضی کلمات قوسیقی خیلی باضیه تا به حد ظهور هم نرته خب نداره. یعنی باید یه جور بشه که این فهمه عرفی باشه یا بگیم وقتی کسی به دست عرف بگیم افران خود دامال علما می این خیلی تأکیل رو جانبه علم داره علم برای او خیلی ارزش داره به حیثی که خادمش رو هم بگه افرام میکن, میکن. اما نگه که مثلا فساق رو افرام نکن ولو پدرش مثلا پسرش فاسق باشه ولو پدرت باشه اگر گفت فاسق رو افرام نکن ولو پدرت باشه این ولو پدره این ها چی خواهر میکنه میفهمیم خیلی تأکیب رو فاسق داره اینو اولف دیگه اگر گفت پدره که اکرام نکنه ولو فاسق باشه از اون رو گفت اکران علمان اولف میفهمیم ولو فاسق باشه مقدمه ولو پدره باشه مقدره یعنی میخواد به هیچ نه شما باید فاسق رو اکرام نکن اما بخش گفت اکران خدا من علمان یعنی عالم بودن خیلی ارزش داره خیلی خ ولو خالدشونو نسبت ایجاد فرس مثلا یک نوع تلبس خدمتی برای مثلا صادر ممکن ملک شده چون یه جوان نیست مش مشیار بردگی مثلا بعد دیگه وجود نداره ولو نی که نباشه فقط تلبس به خدمت باشه این اینقدر علم ارزش داره که تلبس به خدمت هم وجود اکرام میاره دقیقاً مدای بحث روشن شد پس احتمال اساسی توی این مسئله هست یک همونی که ظاهر کلمات ناهمی و همین سنیایی که الان دارین میخونین و اون اینکه هیچ فرقی نمیکنه من مفهوم هم دلیل است من هم دلیل داشت من هم تخصیص میدارم مفهومم میاد این راه مساره دو هدیدی خواهم شدن که نه مفهوم چون دلالت ضعیفه از مالک امروز ندارید دلی. مفهوم دلیل هست اما در اون حدی نیست که باید دلیل در دلی بیوفته دلی دلی مثلا اون ای که من تعریف کردم اکس این هم دلیل هست و هم از در این لفظه قویتره هم از در این لفظه قویتره چرا؟ چون کاری میکنه که گاهی بعد مواردی که در جای دیگه در این گیرگاه این محبتن میشه نه همیشه گاهی این کار میکنه مثلا مثالی مسالی که خدمتون ارز حالا من دیگه دو سا نفتن در اینجا جابت خودم لطیفه اکتنی اختلاف تغییر خودش ذات خودش. محضور محضور محضور چطور خود چون اون مفهوم یک واروکه موبره این به اعتمادین مفهوم خوب بشه درد اگر می اصل مل العلماء، شما میگه اصل خدام العلماء فهم کرد. هست اما چون مثلا بفهمیم در مفهوم موافق اولویته و واضع اولویته این برش بارش هوثی اگر بگه به عکل من علمالا چکم فلساخ تا آرز رو عکل من خدا من علمالا چکم تا آرز نیست عالم فاصله عبادی کام باشه اگر بگه به عکل من علمالا چکم فلساخ به امکان عباد باز اینجا لا چکم فلساخ مقدم میشه این رو با بگیم نقطش نقطه یه خهم ارفیست می اینجا خمی کرده این در محبون محافظه مخالق نارز در ببینید یک مطالبی هست. یه مقدار استدلالاتی هست که اونها دارن. ما نداریم. مثلا در همون اولش بحث چیزی کرده که مفهوم مفهوم تخصیص بزنن. بعد اشکال کرده کتاب همون درکشید بحر المحیط جلد دو صفحه 510 است. بله. بعد. بعد ایشون جواب داده لحن دلیلا الخلاف این اصطلاح دلیل الخلاف مفهوم مخالفه رو همین دلیل الخلاف اصطلاحیه متون رو گاهبه آدم یه یاد بگیره برای اینکه که به اصطلاحات وارد کشی یکی مجرد قیاسی باب القبوله اولا ما طبیعتا به قیاس حجیت راه نیستیم معلوم شد یکی از نکات حجیت محکوم بین اونهاست چون قیاس هم عقلیه محکوم رو هم عقلی نگه نستن یکی مجرد قیاسی باب القبوله حکمش حکم قیاسه طبعا این چیمین استدلالی در فقه ما محقوبه این یه دو خیلی عجیب چون یقین دارم معلوم مرموم ناینی محقب ناینی ده چرا مرموم ناینی واقعا اون خطرق و اصولی ایشان اون جنبله اصولی ایشان قلود اگه یادتون باشه در اول گفتم چند تا نکات در کلمات ناینی ایشون در بردار مفهوم و اومالنگاه که این به مجلول به دلالت استدامی لحظی که این به دلالت عقلی بعد هر دو اینها خیلی از قیاس منسوس الله هست خیلی لطیفه یعنی اون صافه یعنی مرمومنانی اکردیم اعواجده مفرمون آجان قیاس هم نباشه بر فرد مقاعده به قیاس بشین باز قیاس خیلی عجیبی یعنی بایده بایده با از محلومه خیلی توجه عجیبی سابقی هم باید که ناید اینا قیاس مستنبت و غله مرادشونه خیلی عزیبی و آقا این هم بیشتر فکر میتونه تریشن چقدر این مرز منوشه اصول و افکار و اصولی در ذات و خمیره الهی شده بدونی که به کلمات اونها متلعه باشه و انصافا این هر پرس لطیف نگفتی ایشان, ایشان. یعنی میشه این ما از داوی خود احل سنت باشون برفرسی بکنیم انصافش قیاس با مفهوم فهم میکنم چون محروم اعتماد خیاس استنزاج عقلی صرفه نباید این رو با یکی گره بله داری طلاح محکوم مخالفه یکی مجرد خیاسی باقی قربه بله این یک یک مطلب این بود بعد ایشان یک ای رو داره که یکی اوز تخصیل این نکات رو بگم چون نکاتش لطیفه و روشن بشه به محکوم الموافقت سوا اون قلم که که موافقت من منباب قیاس من منباب لح ل کل هما ما یا خ و به رمون یعنی موم موافقت یا ازواابقیاس باشش یا ازوااب درظ باشه اینا به بهقییات س گفت ااقلیف یا لحظ من اونای هم بدون که این مصال دیده باشن خود ایشون در محوم موافقه ایران دیگه ای گفتن خیر از راه اینها اینا هموزان گفتن این موم موافقت یا از راهقیاط ع اوولیت یا از راه لحظ لظ دلابت میکنن معنی مفهوم این اباظی خوندی اگر واسهتون باشه در مفهوم موافقت فرمودن دو جوره یک جفت با یک التزام اخلقی جلاده التزامی لفظی میشه لا افنه این لا تخللهما افنه چون ممکن از این عرف حدیث فهم این لا تخللهما احامتشون نثورت احامت ایزائتش نثورت لا توذنه اصل لا افنه لا توذنه افنه گوی این اجازتش نره خیلی لطیفه واقعا اینا افتخارات ناسی این محلتی رو سنیاتن <تصفيق> را تابقه هم و معلومی نایمی با اون ارتکاز فطری خودش هم محلتشون رو سن و هم تفصیل قابل بشه و در میگه نه از باب خیاسه نه از باب لحظه مختلفه فهم و فهم اورفی او رو از لحظ میگه مثل آتقاله همه اوفه یا به ترین آقا خیاس و به ترین مثل اکلم خوددام از علمان, خود علمان, علمان. خود میگه اکلم خوددام از علمان مفروم میشه دیگه اکلم از علمان اکلم خوددام خادم غیر از آدارون لیکن عقل میگه یعنی عقل ما فهم ما شعور و ما میگه وقتی خادمش اکرامتون خودش بکره یک اولان خیلی تجربه های این پس اونا گیر کردن که آیا مفهوم موافقت از قیاس این حکمه یا از لفت یکیشون گفتن از قیاس که از لفت نمی‌فهمم چطور می‌سنا سیاست تا به تعریفیشون که یا گاهی اوقات از لغت گاهی اوقات از که انتظامی اعلی است. اینا فرق میکنه فرق میگه. نا نا از از همین حاوی دیگه. نه سیاست یعنی عقل. نه این یعنی از ضوابط اعلی هست، نه از ضوابط. فرق میکنه. حالا نکته خرجش چیه؟ نکته خرجش اینه که خوب دقت بکنید. وقتی که اون موضوعی که حکمش تعلق گرفته یک چیزه اون موضوع دیگر یکی نخواهیم به اولویت را به مفهوم و آفره موضوعش عرض میشه اینجا حکم هر چون من اون نمی میاد به به مثلا که باقیم خوددام هم خادم و آدم هنگه از آلمه خادم یه چیز آلم چیز دیگه وقتی حکمش را از اون خادم شنوحید حکم خود و آلم را درگیاریم میشه دو سال اگر از شد دو تا باز بگیم به هفت رو عمله. اما هم گفت لا تقول لا ما افه این قول اوف مصداق ایزاه دو تا نشدن یکی هم آم و خواست این لا تقول اوف گفتن غیر از ایزا چیز دیگری نیست. زرافت ناییه بخلقه چون ایزا با اوف یکیه پس اگر گفلات هماله همان یا سوده همان عددشو نکن اگر اینجور فهمیدیم اینه میگیم لفظه اگر موضوع دو تا شد خوف رو یکی شسته یکی دیگه رو به دلالت ازبزان به عقل دارونه اینجا میگیم عقله پس این که نزا بکنیم از ما به یا عقله یا لفظه نه موردش رو هم بکنه تا ما مفهوم در بیاریم اکلم خدامل علماء مفهومش اکلم علماء این عقل مفهومش لا تغالهما افه مفهومش لا تغالهما این لحظه یعنی که انما ارف هستن لا تغالهما ازیدشون نکن هیچ درجه این رو ازید نکن لا تغالهما افه اگر بخواد ترجمه بکنیم اینجوری چه این ازیدشون نکن فهمو ارفیش مطلقا ازیدشون نکن این هم یک نکتهی بود که ملهوم نائنی قدرس الله در اونجا مطرح کرد اون وقت یه بحثه یا داره بگیم که آیا در مفهوم مخالف خالفه موافقه در خلاف نه که از رای بروزهی نه هم دیگه بگذاریم چون بعدی بحثشان تکرار کرده دیگه این بحث رو ما تمامش بکنیم نکتای ریزی و خدای ما راجبانه من خاله شدی کتاب رو دارم از خانم که این هم راجب اینجا اون وقت خلاصه بحث ما در اینجا جمع جروع بکنیم اولا این که در این مسئله ما باید دنبال سبوت محوم بیافته اینجای بحث نیست یعنی اون خلاصه بحثی که ما خیلی نخواب اون وقت اینی که محومه فرسون آزیا بخته در کلام واحد کلام این راسته این بالاخره اون در کلام واحد و کلامه قطعا تأثیر داره چرا؟ تأثیر منشع تأثیرش است که ما در باب مفهوم چطور قائل بشیم به مفهوم مفهوم یک راه راه هستی رو رستن قائل بشیم خیلی برای موضوع یا برای تانک حرفی ایشان بد نیست اما اشکال اینه که قید برای بودن یا نبودن قید برای هکم بودن یا موضوع این تکمیل نمی کنه بحث رو اون قیل انحصاری است اون قیل بحث رو تکمیل که انصافش مطلقش برای این فرمان قیل بگیریم برای گفت مثلا مجیب و قیل حفیق بگیریم وجوب بگیریم یا غیر اکرام بگیریم این کافی این در قیل حفیق اما اینکه این غیر انحصاری است این رو با باید اثبات بکنم از کردیم که ما در واقع مفهوم مبنی این شد. که مفهوم این در لغت عرب رث شده برای تعلیق یک و اینی که مشهور نسبت دادن به علمای عدد که فرض وضع شده برای طنز و تقدیر این رو به مفصلا توضیح دادن. از همین فرق است بین تقدیر و تعلیق البته در کلمات و استاد در محاضرات خوندید و ملاحظه که تصفشن بکنید ایشون این دو تا رو عطف تفسیر کردن مثلا واضع تعلیق و تقدیر نه تقدیر یک چیزه تعلیق چیزی دیگره دو تاست تقدیر و فرض یک چیزه تعلیق چیزی دیگره و این است که آیا این ورز شده یا اگر در زبان فارسی خب شما به زبان فارسی میشونی به ارتبازاتو خودتون برگردید. آیا ورز شده برای تقدیر و فرض؟ یا وضع شده برای تعلیق و ترتب به برقرار کردن از مأقوم آراشمون چه انسانی بین فرق و شدائران بررسی کرده و به علمای ادب نسبت داده که علمای ادب قائل هستند برای تقدیر لكن به اهل معقول و فلاسفه نسبت داده که قائل هستند به تعلیق و خود ایشان مرموم های اسفانی اختیار میکنن تقدیر رو فرض رو این بحث گذشت و ذوابق و به اصطلاح نکات فرق این دو قول رو هم در اونجا متعبز شده کسانی که من خلاصش الان ازم، کسانی که قائل به تقدیر هم اونا در حقیقت من کرارا هست کرده که از روحای مهم در زبان شناختی اون مثب کلامه و سوق کلامه اونا میگن اگر اینطور طور گفت این جا که زیدون فرقی اونها اگر مهمان آمد نان بخر، اون سوق کلام و مثل, مثل به کلام روی جزاه اساسا کلام روی جزاز نان مثلا نازل بونه اون وقت اینی که به عنوان شرط میاد اگر مهمان آمد این بیان فرضه یعنی این نان خریدن در فرض آمدن مهمانه و ایلا مثل به کلام اونه این معنای فرض که شما میتونید به خودتون برید. معنای تعلیق میگه نه. مسبب کلام رو جزا نیست. مسبب کلام روی ترتب بین جزا باشه. نگاش <تصفيق> اونی که به کلامه روی اینه که لزوم نان خریدن متوقف است و معلق است به آمدن مهمان. انحسانش بعد، اول تعلیق خوب دقیق کردی؟ آیا عدات شرط برای تعلیق است یا برای تقدیر است؟ البته مرموم آقای آشامسین اسفانی برای تقدیر دبردن و اول خودتون تمایل برای قدقا پیدا کردن و محکوم شرط هم قابل شد. ما در اونجا مفسر متعرض شدیم یه حالا حالتون نداریم یه حالا تکرار شدن به این که اگر کسی غالب تقدیر و فرض بود اثبات مفهوم برای او اصلا خیلی این سخت فوق علاق مشکله یا نمیشه به اصلاح نمیشه اینجا وقت عقلی بود که بشه پس بحث اول آیا این عذاس برای تقدیر یعنی چی نکتی بحث رو همیشه فراموش نکنید. در این مثال عرفی اگر مهمان آمد نان بخرد این سرق کلام رو چیه؟ این قول میگه چونه کلام اون نان هر هدف اونه لکه این نان هر رو در این فرض قرار داده فرض آماندن مهمان و نظام مطلوب و عداد شرق به منظره فرض قرار گرفته میشه فرض میشه رأی دومان میگه نه ارتکازات ارکی ما مساعده است که این اگر برای رابطه بین دوتا نسبت هست وجوب خریدن رابطه داره با تعلیق داره معلق است مشروط است به آمدن مهمان این دو تا معنا رو در نظر بگیریم این که میاد اون رابطه بین مطلوب و عذات شرد و جزا برقرار میکنه نظرش این ایجاد رابطه است کو شد هدف این ایجاد رابطه است لزوم نام خریدن مرتبط هست و متوقف هست و معلق است بر آمدن مهمان این توقف و این تعلیق و این ارتباط این مصبه کلام که ما اینجا مفصل توضیح چون معانی هرزیه رو یه نوع معانی به اصطلاح اندکاکی میدونی توضیح میدونیم چطور میشه برای اندکاکی پرینه دو طرف این توضیحاتش گذاشت پس اولا اونجا اثبات کردیم که ارتکازات و عرفی مساعد است با تعلیق نه تقریر خلافاً محقق اسفانی البته ارس کنم آیخوی هم تعلیق خائلن اما عبارت مغربه متاسفانه زهایت نیستان نمیده داره بشی از اینشون بحث نگرد آیخوی فرضی بین تقریر و تعلیق بحث نگردن گفتن در فرض و تقریر و تعلیق باهم بیا اورادی شنیدم که دشمن یکی نه دو تا و نسبت آن نسبت به علمای عقل هم چیزی من نمیفرموش باشه معلومه ادعی اهل سنت عموماً نسبت به علمای عقل در کتاب بهر المحیط آن نسبت داده به علمای ادب فرض و تقدیر رو و به علمای حکمت معبود تعبیر رو به ذهن میاد که همین دومی احوال باشه این یک دو، این تعلیل به نحوه ترکتوبه به نحوه قضیه اتفاقیه نیست. ما به ذهن میاد که این دو نکته هر دو وضعی هست در وضع لحظه این لحاظ شده این رو بر این کرده اگر رو در زبان خواهد بر این بر سه، این ترکتوب به نحوه الیت یعنی و است برای جزا ما اونجا توضیح دادیم انصاف قضیه چین مطلبی در وقت عرب نیست در لحظه فارسی هم نیست که حتما بعد از حداس شهر باید علت داشت گاهی علت میارن گاهی معلومی میارن اگر نبضه تونده مرید تب داری اگر تب داری تونده تنده هر میارن اما تو اعتبارات قانونی شراسون در اعتبارات آن چی نیست؟ این شاه میکنه ایجاب میکنه همین که مطلوب و اداسه شرط علت میشه چیز دیگه نمیخواد تا گفت اگر مهمان آمد نان بخر یا آمدن مهمان علت نان خریده هم. اگر روز جمعه بود نان بخر روز جمعه بودن علت نان خریده چیز دیگه نمیخواد علت به خلاف در بابو این پس این هست به یک قرینه تیازیه ها یعنی هر جا کلام در مقام انشاء در اونجا علیه این این به نهر علیه چهار. آیا این اولیت انحصار داره یا نه این رو ما احس کردیم بعضی ها این انحصار رو ببینید اولیت و انحصار رو بعضی از ورد داره بردن. ما گفتیم نه دو تاشه از رد از یک قرمی است که عبارت از حال انشاء باشه انحصار هم با مقدمات حکمت نیست باید مقدمات حکمت جاری بشه تا انحصار سابرش بشه این حساب چون اگر این حساب نداشته باشه باید عطف به او بکنه این دیگه باید چابز بشه حالا یا عطف به او بکنه یا نتیجه به این دوست و دلیل عطف به او بشه پس بنابراین مشکل اساسی مفهوم در اینجاست که دو قسمتش به نظر ما با وطعه. یک قسمتش با قرینه آمنه خادیه یا سیاقیه به تحریب وزیار که مقام تشریعی باشه یکیشم به مقدمات حکمه اما خب این ها تو نظر این و تقسیبه. اما ادوه میهن هر چهارتاش به وضعه <تصفيق> یا اگر دو تاشت به وضعه مثلا ستاش ست به وضعه یا پس این مثلا دو تاش به وضعه اون دوتای است به همون قرنه است تا در مقام انشا آمود کافیه یه چیز دیگه همین که در مقام انشا آمود کافیه یا مقام نایمه میهه همین که تعلیق در حکم رو نه موضوع رو کافیه قدقه رو کنه روشن شد پس مبانی باید یکی یکی در اینجا روشن بشه و خود شما هم باید فکر بکنه انتخاب مبنا بکنی که به ذهن ما اینه ما توضیح مبانی رو دیگیم انتخاب بگه با خود شما پس بنابراین این تصور ما در باب مفهوم پس اون نکته اساسیش انحصاره یک مطلب، یک مطلب دیگه خود دقیق بکنیم اگر یک عام آمد عام هم اصفات میکنه مثلا علماء علماء رو اکرام بکن این که حفظ رسته و عنوان عالم این هم شسابه بفینیم جوی برسید اینجا اگر بخواییم عالم رو مقدم بکنیم بر مفهوم، این هم باید انحساب بدا بکنه یعنی عالم بودن لیس الله مجی و از مجید تأثیر مداره یه وقت تمام شده یه دو تا کلیه مختصری فردا ان شاء الله باره بحث تعصب سیستم وجهه من تقدیم میشه ام بزرگه دوست هستون والله یک شنبه تعطیل مصوب 16 هزار جواز بیاله ما